بسم الله الرحمن الرحيم المعرف ششها يعني شش مين واحد من نوع از معرفه رو اینجا آورده المعرف بالإضافة والمعرف بالنداء معرفة بسيله إضافة و بسيله نداء بخاطر اين دونه از امثله رو آورده است سيارتي سريعه سيارت مش مبدا ذمه تقديري یا مضاف الیه محلا مجرور سریعتون خبرش هست اینا همیشونی اینجوری هستن سیرت مواویته حمیدت مبتدا مواویته مضاف اله حمیدتون هم خبر هست خب بریم جلو تغریدو هذا الطائر جمیلون من مبتدا مضاف مواویته نه سیاره سیاره سیارتی سیارات میشه مبتدا مرفو با زمه تقدیری تون مضاف بیای متکلم هست یا مضافون اله محلن مجرور سریعتون خبر مرفو با زمه ظاهری کلام و من یده المعرفته مملول عاقبت و صبری محمودتون کتاب و اخیت مفیدون یا مصرعو اتعد یا مصرعانی اتعدا یا مصرعون اتعدو خب اینجا امثل گروه اول همشون معرفه بودن به وسیله اضافه یعنی سیاره مضاف به زمیر بود سیرت و معاویه مضاف به اسم علم بود سیره به این معرفه هست تغریدتو هادت هادا التائرو تغریدتو التائرو هست تو کتاب شمه هست تائری تائری ها؟ اره باید میگفت تغرید و ها و تا ایری جمیلون همه علمان من حواسم نبود موقعی که خوندم زمه دادم اصلاحش میکنن تغرید و ها و تا ایری جمیلون ترکیبش میکنم تا شما بدونید تغرید و مبتدا مرکوب با زمه ها که حرف کنبی هست ذا اسم اشاره هست ولی مضافون اله هست تون تغرید مضاف شده به ها پس ذا مضاف نیله محللا مجبور اطایری بدال ذا هست چون ذا مجبور هست طایر هم مجرور مجبور هست. جملون هنر خبره تغريدو هست. خب. پس سومین تغريد اینجا چرا معرفه؟ سون مضاف به اسم اشاره است. کلام و من کلام اینجا چرا معرفه؟ سون مضاف به اسم موصول هست؟ عقبت و صبری اینجا چرا عقب معرفه؟ سون مضاف به کلمی هست که معرفه به الفلام هست. از معرفه به الفلام هست کلمهی که مضاف به معرفی باشه خودش معرفه میگردد کتاب و اخیی اینجا کتاب چرا معرفه است؟ چون مضافه به هست که اون کلمه معرفه است. اخی چرا معرفه است؟ چون مضافه به زمیر هست خب این از معرفه به اضافه بود که تا توضیح دادیم اما در ندا هم زمانی که شما یه چیز نکره ای رو به قصد تعین ندا بزنید اون موقع خودش معرفه میشه بلیانم کتاب کتابو مبتدا مرحوبا زمه مضاف اخی مضافن اله مجرور بایا چون از اسمای سته هست کاف باز هم مضافن اله هست مجرور محلن مفیدون خبر کتاب هست بيعيد در قسمته المعرف بالإضافة القوائد اسم أضيف إلى واحدا من المعارف معرفة بإضافة اسمي ك مضاف شوديك أز معرفها بالي صدوها اشتادوها في قائدش المعرف به نداء معرفه به وسیل ندا، منادن هست که قصد تعینه قصد شده از تعین بودن آن یعنی زمانی که شما اون رو نداء زده تعینش کرده چیز خاصی رو ندا زده چیز معجنی رو فاقتصبت تعریف به هاقل قصد پس این منادا، معرفه شده است با این قصدی که شما کردی توی موقعی که شما به اینهیی که رو دارید صدا میزنی خب معرفه هست دیگه چی شد؟ معرفه شد دیگه یعنی چیز معینی رو صدا زدی یعنی معرفه همونی معین باشه دلالت بر چی کند؟ بر معین کند بله بریم درس بعدی رو بخونیم به خاطر این که حقا و انصافا ما عقم هستیم ترکیب چی؟ ترکیب ندا اعراب شو قبلن خوندیم یکی رو برایتون اعراب میکنن یا مصرعو میگیم یا حرف ندا مصرعو منادا چون نکره مقصود بوده مبنی بر علامت رف هست مبنی بر علامت چی هست رف هست محلن منصوب اتاید که اتا هم فعل ام هست فاعلش انته مستتر هست محلن مرفوع جواب این میشه بکنیم جواب قسم نه این قسم نیست این ندایی جوابی ندای؟ بله جوابی نجا کنیم نقش هست؟ نه نه نقش نیست